مصنوی معنوی مولوی برنامه هشتم قصه حدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید، چشمهای روشن بسته شود. چون سلیمان را سراپرده زدند، جمله مرغانش به خدمت آمدند. همزبان و محرم خود یافتند، پیش او یک یک بجان بشت آفتند. جمله مرغان ترک کرده جیک جیک. با سلیمان گشته افسح من اخیق. همزبانی خیشی و پیوندی است. مرد با نامهرمان چون بندی است. ای بسا هندو و ترک همزبان. ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان مهرمی خود دیگر است. همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل جمله مرغان هر یکی اسرار خود از هنر و از دانش و از کار خود با سلیمان یک به یک وا می نمود از برای عرضه خود را می ستود از تکبر نیو از هستی خیش بهر آن تا ره دهد او را بپیش چون بباید برده ای را خاجه ای ارزه دارد از هنر دیباچه ای. چون که دارد از خریداریش ننگ خود کند بیمار و کر و شل و لنگ نوبت هدهد هد رسید و پیشش وان بیان صنعت و اندیشش گفت ای یک هنر کن که تر است باز گویم، گفت کوته بهتر است، گفت برگو تا کدام است هنر، گفت من آنگه که باشم اوج بر، بنگرم از اوج با چشم یقین، می ببینم آب در قعر زمین، تا کجای است و چه امق استش چه رنگ، از چه می جوشد ز خاک یا ز سنگ، ای سلیمان بحر لشکرگاه را در سفر می دار این آگاه را، پس سلیمان گفت ای نیک رفیق در بیابانهای به بی آب امیق. تانه زاغ در دعبای هدهد لاغ چون بشنود آمد از حسد با سلیمان گفت کوکش گفت و بد از ادب نبود به پیش شه مقال خاصه خود لاف دروغین و محال گرمرو را این نظر بودی مدام چون ندیدی زیر مشت خاک دام چون گرفتار آمدی در دام او چون قفص اندر شدی، ناکام او. پس سلیمان گفت، ای هد هد رواست. تو در اول قده این دورد خواست. چون نمایی مستی ای خورده تو دوغ، پیش من لا فیزنی آنگه دروغ؟ جواب گفتن هد هد تعنای زاغ را. گفت ای شه بر من اور گدای، قول دشمن مشنو از بحر خدای. گر به بطلان است دعوا کردنم، من نهادم سر، ببر این گردنم. زاغ کو حکم قضا را منکر است، گر هزاران عقل دارد، کافر است. در تو تا کافی بود، از کافران جای گند و شهوتی، چون کافران، من ببینم دام را اندر هوا گر نپوشد چشم عقلم را قضا چون قضا آید شود دانش به خواب، محسیح گردد بگیرد آفتاب از قضا این تابیه که نادر است از قضا دان گو قضا را منکر است قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صریح نهی و ترک تعویل بولبشار کو علم الاسما بگست صد هزاران علمش اندر هر رگ است اسم هر چیزی چنان کان چیز هست تا به پایان جان او را داد دست. هر لقب کوداد آن مبدل نشد. آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مومن است اول بدید. هر که آخر کافر او را شد بدید. اسم هر چیز تو از دانا شناو. سر رمز علام الاسما شنو اسم هر چیز بر ما ظاهرش اسم هر چیز بر خالق سرش نزد موسا نام چوبش بود عصا نزد خالق بود نامش اژدها بود عمر را نام اینجا بد پرست لیک مومن بود نامش در الست آنکه بد نزدیک ما نامش منی پیش حق این نقش بود که با منی صورت بود این منی اندر آدم پیش حق موجود بیش و نکم حاصلان آمد حقیقت نام ما پیش حضرت کان بود انجام ما مرد را بر عاقبت نام نهاد نا نه بر آن کو آریت نام نهاد چشم آدم چون به نور پاک دید جان و سر نامها گشتش پدید چون ملک انوار حق در وی بیافت، در سجود افتاد و در خدمت شتافت متح این آدم که نامش میبرم، برم، قاسرم گر تا قیامت بشمرم این همه دانست و چون آمد قضا، دانش یک نحی شد بر وی خطا که عجب نحی از پای تحریم بود یا به تعویل بد و توهیم بود در دلش تعویل چون ترجیح یافت تب در حیرت سوی گندم شدافت باغبان را خار چون در پای رفت دوست فرصت یافت کالا برد تفت چون ز حیرت رست باز آمد براه دید برده دوست رخت از کارگاه ربنا انا، ظلمنا گفت و آه یعنی آمد ظلمت و گمگشت راه پس قزو ابری بود خوشيد پوش شیر و اژدها شود زو همچو موش من اگر دام نبینم گاه حکم من نه تنها جاهلم در راه حکم ای خونک آنکو نکوکاری گرفت، زور را بگذاشت او زاری گرفت. گر قضا پوشد سیه همچون شبت، هم قضا دستت بگیرد عاقبت گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرگاهت زند از کرم دان اینکه می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد این سخن پایان ندارد گشت دیر گوش کن تو قصه خرگوش و شیر پای واپس کشیدن خرگوش از شیر چون نزدیک چاه رسید چون که نزد چاه آمد شیر دید که خرگوش ماند و پا کشید گفت پا واپس کشیدی تو چرا؟ پای را واپس مکش پیش اندرا گفت کو پایم که دست و پای رفت جان من لرزید و دل از جای رفت رنگ رویم را نمیبینی بینی چو زر زندرون خود می دهد رنگم خبر حق چو سیما را معرف خانده است چشم آرف سوی سیما مانده است رنگ و بوغ ماز آمد چون جرس از فرس آگه کند بانگ فرس بانگ هر چیزی رساند زو خبر تا بدانی بانگ خر از بانگ در گفت پیغمبر به تمییز کسان مرء مخفی لدی تین لسان رنگرو از حال دل دارد نشان رحمتم کن مهر من در دل نشان رنگروی سرخ دارد بانگ شاکر بانگ روی زرد باشد صبر و ناکر. در من آمد آن که دست و پا برد. رنگ رو و قوت و سیما برد. آن که در هر چه دراید بشکند. هر درخت از بی و او برکند. در من آمد آن که از وی گشت مات. آدمی و جانور جامد نبات. این خود اجزایند کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو تا جهان گه سابر است و گه شکور بوستان گه حل پوشد گاه اور آفتا کو نارگون ساعت دیگر شود او سرنگون اختران تافته بر چارتاق لحظه لحظه مبتلای احتراق ما کو افزود زختر در جمال شد زرنج دق و همچون خیال این زمین با سکون با ادب اندر زلزلش در لرز تب ای بسا که زین بلای مردریگ گشته هستند در جهان و خرد ریگ این هوا با روح آمد مقترن چون قضا آید و باگشت و افن آب خشک و روح را همشیره شد در غدیر زرد و تلخ و تیره شد آتش که باد دارد در برود هم یکی باد برو خاند یمود حال دریا زستراب و جوش او فهم کن تبدیل‌های های او چرخ سرگردان که در جست و جست حال او چون حال فرزندان اوست گه حزیز و گه میانه گاه اوج اندر او از سعد و نحسی فوج فوج از خوده کل کلها مختلط فهم میکن حالت هر منبسط چون که کلیات را رنج است و درد، جزب ایشان چون نباشد روی زرد. خاصه جزب کو ز داد است جمع، زاب و خاک و آتش و باد است جمع. این عجب نبود که میش از گرگ جست، این عجب کین میش دل در گرگ بست. زندگانی آشتی زد هاست. مرگ آن کند میانشان جنگ خواست لطف حق این شیر را و گور را الف داد است این دو زد دور را چون جهان رنجور و زندانی بود چه عجب رنجور اگر فانی بود خاند بر شیر و از این رو پندها گفت من پس ماندم ها پرسیدن شیر از سبب پای و پس کشیدن خرگوش شیر گفتش تو ز اسباب مرض این سبب گو خاص کین هستم غرض گفت آن شیر در این چه ساکن است آن در این قلعه ز آفاتی من است قهر چه بگویید هر که عاقل است زن که در خلوت صفاهای دل است ظلمت چه به که ظلمت های خلق سر نبردان کس که گیرد پای خلق گفت پیشا زخم را قاهر است تو ببین کان شیر در چه حاضر است گفت من سوزیدم زاناتشی. تو مگر اندر بر خیشم کشی. تا به پشت تو منای کرم چشم بکشایم بچه چه در بنگرم، نظر کردن شیر در چاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را چونکه شیر اندر بر خیشش کشید در پناه شیر تا چه می دوید. چونکه در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر و او در تافت تاب شیر عکس خیش دید از آب تفت، شکل شیر در برش خرگوش زفت چونکه که خسم خیش را در آب دید، مرورا بگذاشت و اندر چه جهید در فتاد اندر چه کوکنده بود، زانکه ظلمش در سرش آینده بود. چاه مزلم گشت ظلم ظالمان، اینچنین گفتند جمله آلمان. هر که ظالمتر، چهش با حولتر، عادل فرموده است بتر را بتر. ای که تو از ظلم چاه میکنی، کنی، دان که بحر خیش دام می کنی. ای که تو از جاه ظلم می کنی، از برای خیش دامه می کنی. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بحر خود چه می کنی اندازکن. مرزعیفان را تو بی خسم مدان، از نوبی زا جا نصر الله خان. گر تو پیلی خسم تو از تو رمید، نکجزا تیرن عبابیلت رسید. گر ضعیف در زمین خواهد امان، غلغل افتد در سپاه آسمان، گر دندانش گزی، پرخون کنی، درد دندانت بیگیرد چون کنی. شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناخت آندم از عدو. عکس خود را او عدوی خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیر کشید. ای بسا ظلمی که بینی از کسان خوی تو باشد در ایشان ای فلان اندر ایشان توفته هستی تو از نفاق و ظلم و بدمستی تو آن توی زخم بر خود میزنی بر خود آن دم تار لعنت میتنی در خود آن بد را نمیبینی ایان ورنه دشمن بودهی خود را بجان حمله بر خود می کنی ای ساده مرد همچون آن شیره که بر خود حمله کرد چون قهر خوی خود اندر رسی پس بدانی کس تو بود آن ناکسی شیر را در قر پیدا شد که بود نقش او آنکش کش دگر کس می نمود هر که دندان ضعیف می کند، کار آن شیر غلط بین می کند. ای بدیده اکس بد بر روی ام، بد نه ام آن توی از خود مرم. مؤمنان آینه هم دیگرند. این خبر می از پیمبر آورند. پیش چشمت داشتی شیشه کبود. زان سبب عالم کبودت می نمود گر نکوری این کبودی دان ز خیش خیش را بدگو مگو کس را تو بیش مؤمن ار ینظر بنور الله نبود غیب مؤمن را برهنه چون نمود چون که تو ینظر بنار الله بودی در بدی از نیکویی غافل شدی اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بلهزن. تو بزن یا ربنا آب تهور تا شود این نار عالم جمله نور آب دریا جمله در فرمان توست آب و آتش ای خداوند آن توست اگر تو خواهی آتش آب خوش شود بر نخواهی آب هم آتش شود این طلب در ما هم از ایجاد توست رستن از بیداد یا رب داد توست بی طلب تو این طلب من داده ای گنج احسان بر همه بکشاده ای. مجد بردن خرگوش سوی نخجیران که شیر در چه افتاد چون که خرگوش از رهایی شاد گشت سوی نخجیران دوان شد تا بدشت شیر را چندی در چه کشته زار چرخ میزد شادمان تا مرغزار دست میزد چون رهید از دست مرگ سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد سربراورد و حریف باد شد برگ چون شاخ را بشگافتند تا به بالای درخت شتافتند با زبان شد اهو شکر خدا می سرایت هر برو برگ جدا که بپرورد اصل ما را ذلعتا تا درخت استغلز آمد و استبا. جانهای بسته اندر آب و گل چون رهند دست آب و گلها شاد دل در هوای عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند. جسمشان در رقص و جانها خود مپارس و که گرده جان از آنها خود مپارس. شیر را خرگوش در زندان نشاند. ننگ شیر کو ز خرگوش بماند. در چنان ننگی و آنگه این عجب فخر دین خواهد که گویندش لقب ای تو شیر در تک این چاه فرد نفس چون خرگوش خونت ریخت و خرد نفس خرگوشت به صحرا در چرا تو به قهر این چون چونو چرا سوی نخچیران دویدان شیرگیر کبش رو یا قوم از جا البشیر مجد مجده ای گروه عیش ساز کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز مجد مجده کان عدوی جانها کند قهر خالقش دندانها آن که از پنجه بس سرها بکفت همچو جارو به مرگش جمع شدن نخجیران گرد خرگوش و سنا گفتن او را جمع گشتند آن زمان جمله و شاد و خندان از طرب در زوق و جوش حلقه کردند او چو شمع در میان سجده آوردند و گفتندش که هان تو فرشته آسمانی یا پری نه تو اسرائیل شیران نری هرچه هستی جان ما قربان توست دست بردی دست و بازویت درست راند حق این آب را در جوی تو آفرین بر دست و بر بازوی تو بازگو تا چون سگالیدی بمکر آن اوان را چون بمالیدی بمکر بازگو تا قصه در مان ها شود بازگو تا مرهم جان ها شود بازگو که از ظلم آن استم نما، صد هزاران زخم دارد جان ما. گفت تعیید خدا بود ای مهان، ورنه گوشه که باشد در جهان. قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مردست و پا را زور داد. از برای حق میرسد رسد تفصیل ها. باز هم از حق رسد تبدیل ها حق به دور و نوبت این تعیید را می نماید اهل زن و دید را پندادن خرگوش نخچیران را که بدین شاد مشوید هین به ملک نوبتی شادی مکن، ای تو بسته نوبت آزادی مکن. آنکه ملکش برتر از نوبت تنند، برتر از هفت انجمش نوبت زنند. برتر از نوبت ملوک باقیند، دور دائم روحها با ساقیند. ترکی این شربر بگویی یک دو روز در کنی در شراب خالد پوز برنامه های مسنوی معنوی مولوی را می نوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند